اگر کینه از مغز بیرون کنی به مهرم در این کشور افسون کنی همه لشگرف را توانگر کنم تو را تخت زرزین را افسخ کنم همت یار باشم به هر کارزار به هر انجمن خانمت شهریار چوز این بازگردی بیارا جنگ منم ساخته جنگ را چون پرنگ اگر اجازه بدید تعدادی پیامک من بخونم چون حالا با این مطلبی که شما در آغاز برنامه فرمیدی خیلی از دوستان پیامک دادن که استاد جنیدی عزیز این منظره رو نه یک بار برکه چندین بار از فراز قله هزار مسجد دیدم حمیدی لایم این را گفته خب <تصفح> <تصفح> بای سلام جایزه انگیزه ای برای تمام شنوندگان و مهمتر از همه آقای هدایتی شد مسئله نمره می کنم خوبه و یه بار دیگه بگیم چی من ارز میکنم که فردا شب یعنی پس فردا صبح بامداد فردا شب شما قبل از اینکه آفتاد تو همه نه قبل از این هوا روشن بشه روشن بشه شما حسما به آسمون نگاه کنید طرف خوراستان طرف خراسان شرق ایران و ببینید این دهش ای زدی رو این منظره یهی با این پاداش خداوند رو و ماه و خورشید در یک حالت خیلی قشنگ قرار میگیرند که استاد توصیف کردش ببینید بعد تفته دیگه برای ما تعریف کنید که جایزم بگیرید دیگه هم من نگم کنید باید نور را که آن یه سوال کردم این رایکا آیا یه کلمه باستانیست مهداد به چه مناست مهداد یعنی داده میر مه مهدم که ایمان و راستی یعنی کشی مهر از زمان فریدون سهنمون شدن بابلیان در ایران روان بود و البته سطحش خداوند بود اما نمادش سپیده دم نماد گیتیایی سپیده دم بود و نماد مینویش پیمان در بود این میتردات یعنی مهر داده مهر پدید آورده اما رایکا از نامهای جدیدی است که میزارن یعنی چیز ها. این سواله من خودم دوست دارم دوباره بشنوم از شما سلام شب بخیر لطفا بستا جنهدی در مورد دریای خزر توضیح دارم دردوی خزر به چه معنی است مچکم خدا نگهت دارم این دریا آ... و آو... چرا نام دیگرش کاسبیان است این دریا چندین نام به خودش گرفت در طور تاریخ یکی دریای یا یعنی گرگان یکی دریای آبسکون چون این دریا آبش نسته توی اقوی آنسو ها هیچ اصلا مثل یه برکست من رفتم یازده دوازده سال پیش رفتم به با استرالیا برای سخنرانی در اون سازمان ایران شناسی اونها دریای اقوی آنسو کبیر انواج کنن میشه پونزه متر میشه متر میشه بخوره به این تخت سنگا که کشتی رو این دریا هیچ در برای برای دریای نه دریای فارس چون دریا فارس از اطراف محدود انواج خیلی بلند نداره ولی دریا به مفهوم خودش یعنی اون زره یعنی اون فراخ کرد به ویژه حبیر که بهش میگن آرام که بیجا همچین نامی رو بهش کداشتم این انواج بلند میشه ده به ایت خونزه همه متر به شکفتنگیزه واقعا خب بعد مز... تبرستان دریای تبرستان و دریای خزر به خاطر اینکه که خزران هم که اقوام ایرانی بودند که آریای باستان بودند که بالاخره پیرامون این دریا بودند و در یک زمانی هم تونستن از طریق بیان از طریقی که ایران به طرف... طرف قرب دریای خزر برن این نام هم داده شده چندین نام هست که یکیشم دریای کاسفیه چون که در زمان کاسب های یعنی کابوس شاهنامه ایرانیان رفتند موازها یعنی کوه ها رو گرفتند و خب از این سو به دریا رسیدن این دریای کاسبین هم گفته شده بلی من تلفن‌های های برنامه رو خدمتون از کنم یه فهمه که بگم هست که من اینو رو اول چون خیلی تحکید کردن که تلفن‌های های برنامه رو بگیم و این موج رادیو رو موج رادیو قبلا صد و شش بوده اف ام در تهران شما میلخید صد و شش بوده الان صد و شش هست. این تغییر صد و شش هفت دیگه نگیرید صد شش رو بگیرید و شهرستان ها هم با توجه به هر شهرستان موج راژیوی خودشون رو میتوند و اف ام تنظیم باید بکنند پانسر و هشت هم موج یا ام هستش که میتونید برنامه های ما رو بشته میتونید تلیفون های برنامه 222-4185 222-4185 518 230 و شماره پیامک سی هزار پنج و پنج هشت شماره پیامک ما شما میتونید سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید با درود فراوان بر استاد جنیدی و عرض میکنم که دیدگاه شما در باره اصلگذاری عشقانیان بر تاریخ ایران زمین چیز خدای ها چه بودند سپاس گذارم دوستار همیشگی و فردند اندیش ناب شما علی رمزانی از خودستان شاید به خودستان درود شریفترین دوره پادشاهی ایرانیان که به شیوه کیانی اداره میشد. یعنی به شیوه زمان کروش و پیش از کروش اداره می دوره اشکانیان بود که و اینجا آزادی های فراوان بود و هر استانی بر خودش پادشاه داشت دعجه این پادشاهان شاهنشان تا بیکردن و اون شاهنشان در کارها یه نظره همگانی داشت و یکی از ویژگی‌های های این, این از دوره باشکوه این بود که سه بار رومیان اومدن حمله کردن تا تیسون حتی اما نتونستن ایران رو بگیرند. زیرا که اسطن ها همه خودشون پازشوهان محلی داشتن و مقامت کردن به اینا رو بیرون کردن. و ما در برابر سه باری که اونا به ما حمله کردن هیچ نرفتیم به روم. بلکه هم باره از خودمون دفع کردیم. یک نامه گروه از مردمی شهر خوزستان به شاهنشان نمیشتن که دوبار ما این رئیس انجمن شهر خودمون رو انتخاب کردیم بنابر قانون ممکن نیست اما چون او برای شهر ما بسیار کار کرده ما می‌خویم که برای بار سوم هم او انتخاب بشه و فقط چختش موافقت بشه شاهنشاه این نامه گم شده ولی پاسخش که الان هم در دست قرارتکران اروپایی هست در اروپا این چیز اومده که چون این شخص برای شهرستان ما خیلی کار کرده ما هم موافقت کنیم برای بار سوم او انتخاب بشه به ریاست انجمن شهر شما ببینید این مکاتبه خود روید دو هزار سال پیش اتفاق افتاده ما در چه درجه با پایه از فرهنگ بودیم؟ دریق و درد که این درد و صوب از طرف یک ایرانی دیگهی به نام اردشیر با بکن پیش اومد و این سلسل رو ها کرد و سلسل سلسل رو از بین برد و برای این دروغ های تاریخی که گفته بودن که هزار هزاره حکومت احریمان می و وقتی میشه برای که خود نشون بدن که مدت دوران حکومت قریمنسی تمام آثار فرنگی اشکانیان رو اردشیر از بین برد یعنی ستنی که اردشیر به آثار فرهنگی اشکانی کرد سبب لا نقص به آثار فرنگی ساسانی نکرد تا این با همین دلیلی که شما میبینید که حتی در شاهنامه از ایشون به جز نام نشنیده هم، نه در نامی خسرووندیدم چه کورتا ها بود شاخو هم نگوید جهان دیده تاریخشان و جست گریخته بالاخره به وسیله اولوهان بیرونی یا تاریخ نویس اصفحانی همزه اصفحانی و یک تاریخ نویس زنجانی الان نام, نام خودش رو یاد ندارم اول فراج ببخشید. اول فراج زنجانی اینو کم کم از توی همون آثار باقی مانده شاهنامه ها نامهای اینها رو آوردن بیرون و تقریبا لااقل دویست سال تونستن براشون پادشاهی بیارن ولی تمام آثار فرهنگی اون زمان از بین رفته فقط ما چهار نقطه یکی در خوزستانیه یه داریم که متعلق به زمان اشخانیانه یکی در لاخمزار بیرچند یکی چند مهر و استوانو و اینها در نیسای نزدیک مرو پیدا شده اخیرا در افغانستان گرامی یک چیزهای پیدا شده یعنی اینطور آثار رو از بردن که بعد از این چند روز سال چهار جا تونستیم و آثار عشقانی رو پیدا بکنیم درود به اون دوران باشکوهی که بر پایه عنیان کیانی اداره می شد و همه مردم در کار کشور سهیم بودن و درود به اون کسانی که ایران را از دست دشمن خارجی گرفتند. به دست ایرانی دادن نه همچون سانسانیان که از دست ایرانی گرفتن دادن به خارج شوق کردن که پایتخت به صلاح اشکانیان نیسا اسمش بوده به چه معنیش نیسا نیسا. نیسا, نیسا, نیسا, نیسا. نیسا دو بار تکرا شده در کوردستان و آزربایجان رو نیسای داریم جایی پرورش از کده نام های خیلی باستانی رو نمیشه در بارش کرد که چه معنی داره نی سایه نی پیشوندش اشاره به بنیان گذاردن و یعنی در حققت بنا کردن است. ولی دیگه سایه من مفهومش معلوم نیست نمی اندازه هست که در نیسا بوده یه به نکه درزیدی پیامت اومدن برای ما سؤال کردن که سوال کردند که تلفن راهنما رو تلفن بنیاد ملی شهربونی خواستند دور یا همون تلفن بنیاد ملی شهربون این هست 88 96 27 84 بس 88 96 27 84 دورگار یا همون فک هشتاد و هشت نود و شش، بیست و دو چهل و سه هشتاد و هشت نود و شش بیست و دو چهل و سه من با اگر فرصت های مختلف خدمتون شماره میگم اگر می تماس داشته باشید با بنیاد این ش با استاد جدید و دروا ااهامششون بپرسید با این تلفن میتونید بپرسید. شمامونیهت aussi شبکه رادیویی موج پیمک های زیادی اومده از شما عزیزان من از استاد خانش کردم هفته قبلم اومده بود، هفته قبلم اومده بود در مورد آذربایجان پرسیده بودی. در این وقت اگر اجهی فرمای استاد، هم خارج بود اون مطلب بودفهمیم که ادامه داستان رو دا تر هم اومده حالا می زمان به چه صورت نفر میخواید شما ما در مورد آدواجان علی سربت امابدا باید ما بدونیمبی درتمهایی که خصوص از م چه که خصوص آدرب شد بود وبارها در یشت ها بود در کتاب های دیگه از خصوور که خصوص در کنار حال دریچه چی چست نام شده در یاچه چی چستی که در جان میده متاسفانه همین در چه میه نه و بنابراین نخستین پارسیان جهان در آزربایجان عزیز ازشان نام برده شده در سنگ آشوریم و از پارسوا و پاسواش نام برده شده در آزربایجان و خوشبختانه در نزدیکی اردبیل هم یک گشت بزرگ است من هم پارسوابات که هنوز این نام اونجا هست هفته پیش از یکی از هموندان و بنیاد نشابور آقایی دکتر دارش افروز اردبیلی من اتیاره داشتم که من در گفتودم که نحالین به منی دوشکه در خورسان به گونه نهلیچه یعنی دوشکه هناز باقی مونده و دول هم در خراسان دور گفته میشه یعنی سطل آب ایشون به من زد که ما در سردسار خورسان به سطل آب میگیم دل و به که شما در در میگیم ما میگیم نالچه و افزون بر اون در تمام آذربایجان گرامی سفره رو میگن دسترخان دسترخان درست تلفظی که در تاجیکستان هست اونون میگن دسترخان شما به بشید خونه یه تاجیک بلافاصله دخترا دسترخان دسترخوان اگر بخوید بمونید میگسن که میمونید دسترخوان کو بلکه بی نیست و این همین درست با همین ترتیب در آذربایجان جان سرسار آزربایجان بیان میشه و اون چیزی که من توجه کردم اصلا تحلجه آذربایجانی با تحلجه تاجیکستان یکی. یک وقتی من در همون کدودها و جنگها در تاجیکستان بودم توی خمیه که بودم که متعلق بود به یکی جوانه بسیار روسیاد نازنین تاجیک جان خودش هم ماهی دین آپور جان خودش رو را در راه مهره ایران داد و این جوان رو که من همیشه وقت بشون گفتم چهرهسی وقت رو داری گلوله زدم تو دهنش به خاطر که ایران ایران میکرد و ایران ایران می گفتفت قاتلشونم پیدا نشد در خونه مطلب او و من تصا بودم پشت پنجره دو تا دختر بچه یکی شش ساله یکی هشت ساله و یه بچه سه پنج پنشش ماه توی گهواره داشتن چرخدار اون جده ایسی دودن با هم صحبت میکردم این جمله اینطور گفت من که نمیرم هم گفت. شما دبا به گفتار آزربازیانی ها اگه بخوام بگن همیتون میگن من حالا مثلا گیت میرم دیگر من که میرم کو. همین الان در آزربازیان همونطور گفته میشه تحل عجیب و اون همونطور که در تاجکستان هست دروت به تاجکستان گرامی ایرونویچ و دروت به آزربایجان گرامی پایگاه که خسرو کیرامی و پایگاه آتشکده آزرکوشن هست به ما خالا این, ای این فاصله باز من دوتا پیامک باید یعنی پیامکان این طوری زیاد میدون برمان خیلی جالبه سلام من مهدی هستم و من مهدی هستم پنجانی ساله برنامه شما رو دارم گوش میکنم گربان هستم <تصفح> <میدی جان> شاید باشی شاید باشی با بزرگ میشی مرد بزرگی میشی فرزند بستن میشی به بعد ایران میخوره. ایران به آینده درخشان نیاز به شما فرزندان ایران اون آینده درخشان رو فراغم میکنید باز <تصفح> خب و ها پس از شنیدن پیام جمع. به پاسخ چونین گفت که روی از شنیدیم سخت تا سلیم گفتو که کردی مرا آفرین همان باد بر تاحت تو و نگین دویم آنکه که گفتی زیزدان سپاس که بینم همین پور یزدان شناس ز شاهان گیتی دل افروزتر پسندیده تر پیروستتر پیروزتر مرا داد یزدان همه هست چی گفت که با آن هنرها ها خرد با جفت کنه یعنی جنگاوری در از جمه هنه رویی تی بود در عصر. نره نره یعنی شجاعت نره یعنی شجاعت نیک جنگاوری میگه که با این جنگاوری خرد همراه باشه خور تو را چند خواهی سخون چرپ است به دل نیستی پاکوی از آن پرست کسی کو به دانش توانگر بود زکفتار کردار بهتر بود که سعدین یکی خرد مربوطن به گفتار نیست و ساید شون نیم کردار نیست از اینجا گرفته در جادوی را تو سرمایه گشت سخون بر زبانت تو پیرایه گشت زبان چرب و گویا و دل پردروغ برای مرد دانا نگیرد فروغ پیدر کشترا شاغ گیتی مخون کنون که سیاهوش نمود دست خان. همان مادرم راز پرده به راه کشیدی و گشتی چنین کی نقاه. هران کس که او بود به درگاه تو بنفرید به جان بیراه تو. چنین بود هر از دان که من سرف راز گردم به هر انجوان گزند و تو از من بگاشت یعنی برگشت که با من زمانه یکی راز داشت. از آن پس که گشتم زمادر جدا چونان چون گفت بچه بین و به پیش شبانان فرستادیم به پروار شیر بزان دادیم. چون این بود تا روز من برگذشت مرا اندر آورد پیران زداشت. اما بکره همین نسخان به زداشت اما میدونیم که از کوه آورد بدشت،, بدشت درست. به پیش تو آورد و کردی نگاه که هستم سزاوار و تخت و کلاخ که همچون سیاووش سرم راز تن به برگی و تن همه یاود کفم زبان مرا پاکی از دان ببست همون خیره موندم به جای نشست مرا بیدل و بیخرد یافتی به بی کردار بد تیز نش... نشتافتی سیاه باش نگه کن که از راستی چه کرد و چه دید از بد و کارستی. زبهرتو پر پرداخت آین و گاه. یعنی هفته شوه ایران را, را کرد. بیامد زگیتی تو را خاند شا. چو دیدی گرد و گردگاه ورا بزرگی و گردی و راه برا. به جنبیدتان گوهای بد زجای بیفکندیان پاک دیگراز پای. سر تاش داری چونم ارجمند بریدی به سامن سر. اوزفرد دگر آن که گفتی که دیو و دل و رای من سوی زشتی کشید همین گفت سخاخو هم جمع شید شد شد چند از نیخوبی ناامید نبرگشت از اینشان بد روزگار زبدگوهر و گفته آموزگار بدگوهر نید گوهر نجاد بد خودشون کسی کو نتابد سر از راستی نبیند درش کجی و کاستی من یک که از تخت تو دلت روز و شادانم از بخت تو نگه کن که تو چون بهت باورم چون کردار کردارهای تو یاد باورم. از این پس مرا را جز بشم شیر تیز نباشد سخون با تو تو راست شد سخون هرچی گفتم نیا را بگوی که در جنگ چندین بهانه مجود سجنه دی. تو تا همینجا داستان رو داشته باشین داستان شاهنامه رو ادامه شده در هفته آینده شما برای ما بخوانید و قویمان شما بعد زمان تقسیم بندی کنیم های زیاد اومده و پیامک های زیاد اومده که بعضیاش حال عجیبی داره که من هم حتی رو فهم میگیم من هم حتی اونجا فقط سوالات من میخونم اجازه بدید اون پرمکان حالا میخونم باز یه اون فضایی که وجود داره فضایی که در برنامه ما وجود داره در برنامه که در خدمت شما هستیم هم صحبتی با شما رو دارم حس و حال عجیبی داره استاد جونهیدی بازه که من با همه وجودم همه جانم با همه روانم با شانم آمیختم نه سن بگم اون, چیز اون که خیلی من میادتون می یا گفتیم من مریض بودم گفتم مریضم شما اول بر گفتیم تو موقع برنامه تو اصلا نمیداد مریضی واقعا زندگی میکنیم در که با هم که و این خیلی خوبه این هم صحبتی در مسمثلله شما بودن دخدمتون ص باشید دورید در شما خون یعنی چی؟ خوز خوز در نوشته های پارسی باستان به صورت اوجا اوماده در نوشتههای خود خوزستان که اروپاییا ها برای ما نام ایلامی درست کردن براش و حتی با این میلیسند سنت اون رو از ایران جدا کنن انگیز واقعا یعنی بلاحت این اروپایی که در تمام این مدت یک سری 3200 طور بوده که سیاه شده اونا داوری کردند که اینا ایلامی ها سیاه اگر ایلامی ها سیاه چرا در خودستان یه نفر دیگه سیاه پوست سیاه میشه؟ در حساب از این دعواری های زیاد کردن برای که اعلام رو یعنی خوز خوزستان رو از ما جبا کنن این در هم سنگ های خوزی به صورت اوجه اومده هم در سنگ نوشته های پارسی یعنی هخامنشی اوجه اومده این اوج همونه که شد خوچ در خوزستان به زبان پهلبی داریم، و بعد شد خوز در خوزستان و شد چوشت در شوش و رسوزیانا و سوزنگر اینا همه خوزه یعنی... یعنی در حقیقت نام اون بخش از ایرانه سرفرازه که دارای فرنگ خیلی خوبی هم هست به اروپایی خوب خود که اونان از ما جدا. درود دروت بر استاد جنیدی شاهنامی استاد گرفته از چه نسخه ایست ارنواز از نهاوند شاد باشید ارنواز درود به نهاوند من از همه شاهنامه های موجود بخری گرفتم و بر اساس 27 سنجه ای که قرار دادم ابياتي رو که تشخیص دادم که از شوانامه سریستا استخراج کردم و دلیل آوردم که به چه دلیل مثلا الان همین در برنامه ایم شب دیدیم که اون ب ب ب گزیدن جایی که هرگز پلنگ بدون سیخ به آب من من من چنگ این ممکن نیست چون که پلنگ نتونه را بره اس پس اون چطوری میتونه راه بره و دلیل آوردم همینو بعضی از این ابيات یه دلیل بر پایه تو 5 دلیلم داره که این از آن فردوسی نیست از همه شانم های موجود من استفاده کردم، حتی در برای یک یک بیت ویژه حتی من از کتاب چار مقاله نظام ارزیه سماغندی هم استفاده بردم نشون دادم که اون تو گوهندتر بوده کونه درست رو داشته بیشت سنجه دارم برقای این بیشت هفت سنجه رخیص که و عبیات از, از فروسی هست کدوم از هست؟ نیست پرمکای زیادی میاد استاد و با این مار هم اومده که الان به سلاحلی که من میخونم استاد برای ما بفرماید مثل این منظورشون این هستش فکرم کنم حالا مطلب زیاد چیز نیستش اما گفتن که مثل این دفعه که شما فرمودید خاندید اون بخش رو و توضیح دادید و علت رو گفتید که این افسود است رو استاد برای ما بفرمایید. خب اگر من بخوام این طور کنم چم سرطول بیشه خوندم خب این کارو بکنم مثلا یکی بعضی ها رو میکنم ما از این رویه ساله هفته و چهار بود این دفتر به چهار رویه چهار من هست دویست و سیزده دویست و سیزده یعنی شازده و سیزده یعنی تقریبا سی سفه بوده. سی اما از سی سفه تقریبا نفسی خواسته ب اینو بفرمایید شما یه یه اگه که یکی یک بیت ما در بیت بعدی تو بعد بود شما اینو ما برای توضیح این کارو بکنید خیلی میکنه سلام تلفن سلام علیکم معنی کلمه نشاکو رو از حضور استاد بپرسم البته با عرض سلام و تشکر و برنامه‌تون و همینطور ببینم که آیا کلمه اینا از صحنه گرفته شده یا نه با تشکر از برنامه‌تون سلیمانی از نشاکو نام باستانی نیشابور بوده رایوند را یعنی دارنده فر فروخت در فروختر بعد این در قلبی تبدیل شد به رایوند و در فارسی شد رایوند و اکنون هم بخش غربی نیشابور تا حدود به هاو همه اون بخش به رایوند خونده میشه یعنی دارنده و نور علتش وجود کوهستان رایوند که در اونجا مدن کان فیروزه است من در اونجا زاده شدم پدرم استخراج میکرد و من هم اونجا زاده شدم اون وقت اینجا زمین کان ارانی هم هم داره و من خودم رو به چشمم دیدم فروغ هایی که شبانگاه از روی کو هم میشه و چون ایرانان باستان برای نور خیلی ازشوی تواقعه بودن بنابراین اونجا آتشکده برزیمه رو هم اونجا سختند و این رعیون تقیی دارنده نور و فروغ این نام در تبدیل تبدیشت به ریو نیست و در زمان عشقانیان و زمان ساسانیان حالا به دنبال یه خرابی که داشته آیا در جنگ بوده یا اینکه زمین لرزه بوده چون بارها نشوه رو زمین لرزه کرده خواستن که بگن که به نام شاپور شاپور ساسانی گفتند نیب شاپور، نه یعنی پخلوان و نیشو بوریان که خب به پارتی بودند و خراسانی بودند و درستون نمیخواست که نام یه که دشمنشون بوده برون شهر باشه یه انتخابی کردن و گفتن که ابرشتره به پهلوی در بفارسی شد ابرشتر یعنی شهر برینه هنواره گفتن من در نویشتای پهلوی فقط یک بار دیدم از نام نیب شاپور یعنی با نام نیب شاپور شده همه زی ابرشهر ساسوانیان سا هم از این خوشحال بودن شا... که شهری که به نام شاپور ساختن به نام عبرشهر خونده میشه بعد از اینکه اه... دیگه اسلام و این اساسیات ها از بین رفت کم کم حالا عبرشهر هم گفتن نشاپور هم گفتن ولی نیب شاپور بوده یعنی پهلوان شاپور سلام وحید هستم به اتفاق همسرم هودا و پسرم که دو ماه دیگه به دنیا میاد داریم برنامه شما رو گوش میبین سپاس گذارم ازتون دوید به شما خوش آمید به فرزندتون مادر عزیز خودتون که در تنهایی رو به آواز بلند بخون بچه این سیدار رو میشته بچه ها رو با این آقای خوش بزرگ کنیم ایزی یک بخش دیگه هم که این آقا یه از مشهور رو گفته بود سعین سینا درست سینا از سینه‌ی ابسائیه یاد شد. یک چه حزنامه ای هست معصوم الف که میگه اول اینجوری شروع میشه. ای آشاه محمود کشورگوشای زمان گر نترسی به از خدای باز هم از آج جونگری باز هم این مال فیروسی هستشان هست تو که شما نه نام گفتی نه کلام نه چی من نمیدن فرزند ایران هستی البته هم تو که فهمیدی این هست فیروسی نبود و هم بردازی که شاهنامه رو گسترده کردن و هی به محمود رو آوردن این بخشن بعداً ارسودن که اصلا فردوسی ننگ داشت که نام محمود رو ببره اونم به نام شاه فقط در پایان شاهنامه گفته که شبت بندی بیهنر شهریار نجات و بزرگی نیاید بکار به محمود گفته یعنی نه هنر داری نه نجات داری نه بزرگی داری و شهریار شدی و در آغاز شاهنامه گفته که ستن با ادباجان و او ماه کجا بر تن یعنی بر تن امیر منصور که پشتیبان فروسی بود شده بچ، بچگار یعنی او رو کشت دوبار اینطوری یاد کرده با ننگ و نفرت از او او هیچ وقت نمیاد محمود رو در هم رو بگه شاه محمود با سلام دوستاد جنگی رستم جهان پهلگان به دست چه کسی و چگونه کشته کشت شد با تشکر عباسی از احواست درود بر شما در آینده نزدیک ما به این داستان خواهیم رسید من به جا سه شماره دو, دو, دو یا سه شماره دیگه به اینجا میرسید سلنش مخاستم قسم در مورد روز سیزده فروردین توضیح بفرم که چای برای ایرانیا نحسه و رابطه سیزده فروردین با اسسر و که توی همدان بارداری دارن ن رابطه وجود داره و یه توذیح هم که در مورد اسسر ممنون میشم بسوارت میپرسید و شما سیده تلفونم هست پس یه از سوالت شما شنیده نمیشه یه مقداری آرومتر و شماده تر با صدای رسالتر بپرسید سوالت خود که من استاد اینجا پیش نمیم یه بخش از سوال شما رو استاد متوجه و منم متوجه شدم اما اون بخش رو که متوجه شدن ام استاد این افسانه که تا بایی پس 6 ماه خونده میشه جوان ایرانی نداره. و سیزده ما نهست نیست این یه فرهنگ اروپایی شما نمیدینید که در اروپا مثلا ردیف سیزده تو هفوه ما نمیذارن دوازده زدم بعد چارده میذارن سندلی سیزده خونه سیزده هیچ کدوم در ایران نهست نیست و ما در هر روز برای هر روز از ماه یک نامی داشتیم روز ما ماه ما تیشتر بوده تیشتر ستاره بارونه و پیشتر از رو, یعنی دونه ها رو سبز میکردن این دانه ها عباره به گندم و جو و باغالا و دوبیا و عدس و عرزن و, و ماش اینا ها رو که سبز میکردن روز تیشتر که روز باران بود ستاره باران بود اینا رو میبردن به روزهای روان به آبها حدیه میکردن با ستارهش تیشتر که تو با ما باران دادی و اینا سخت شد و ما اینا رو به تو هدیه میکنیم واقعاً موضوع سیست دهونه ماه ابری اصلا اگر حساب بکنید به پاییز میفته اصلا به تا وقت ضرب روزه 34 بوری اصلا سیزده‌ای که ما نمیگفتیم ما همیشه میگفتیم روز 34 یا 34 یزد این دو به هیچ وجه با هم دیگه ارتباط نداره مدتیه میبینم که سر جوانان ایران به این موضوع در شده با سلام و درود دیگر خدمت شما زحمت کشان رادیو فرهنگی و, و ممان بزرگوارتان جناب استاد جنیدی واژه اسواستی و تیرتاش به چه معنی است؟ با تشکر رها قمری آبدانان آبدانان, برد. آبدانان. برد. درود به رها و درود به آبدانان آسو یعنی تیر یعنی تیز رو از ریشه چه اصعرسته شده این ریشه اس در خیلی از نام ها هست مثلا واسه کنی در اصل اصل این حیوان تیزرو دیگه در واژه رو روپ یعنی روبودن روپاس پاس یعنی رو این تیز این شده کم کم شده روپا میدونید که روپا خیلی زود این بلغ خرسان اینا رو میگیره یک حرکت میکنه اینا رو میگیره این به این دلیل گوشه رو, رو و در واژه اشوا و شوا یعنی ساک رو هم خیلی تیز روبه است که بعدا س و تیق قانون تبدیل به گفت تبدیل شده که گوش به بیش تاس تبدیل میشه این صلاح اونجا و تبدیل به گفت شو ساک و آسو یعنی تیز رو آسو اصف اگه بگیم اینه اصم رو و تومجا که من میدونم در بلورستان یک خونهیم هست به نام آسو که نام نامش چیز رو تیرتوش هم از نام های جدیگه یعنی قدمت عویستوی نداره که من بشکافه بشه با نام یزنان پاک با درود در هدایفی عزیز و با درود در استاد فردان فریدون جانید از کنان خدمتون من درماز دو تا واژه می خواهد هم افتاد روزی بدیم اولین واجه شهران دومی هم سکالشه اگر محبت کنند. چهار باشید دیگران رو همشاهد کنید باشید که از زمان فردان شد درود باشید مدتی من آواز شما رو نشنیدم امیدونه که بیمار نبودو باشید شهرام در خودش این هفته است دیگه پادشاه رام پادشاه آرام سگالش یعنی مشورت کردن خوزکار یعنی کسی که نیک مشغلت میکنه در زمان پرده داریم که بعدش شده خوزکارش و تا بعد شده سگالش یعنی مشورت کردن خوب یعنی در زمینی کار خوب با هم یک مشورت کردن محابات مح آباد به چه معنیست ما پسند آباد که آباده مح یعنی بزرگ مح <تصفيق> <تصفيق> شهر زیبای کردستان ما اتفاق دفتاده خیلی از شما عزیزان مثلا دوست عزیزی در کرمان هستند گفتن که رو اف ام که دارن میگیرن 95. و پنج ممیسته کنن یک برد باشه سفرییک هستش چون نمیتونم ببینم من میتونم ب... این که خیلی خوبی هستش که میکنید حالا هم رو خبر میکنید که مورد شبکه راژیوی ما الان شده صد و شش دیگه صد و شش هفت نیست زمان زیادی نداریم تموم شد وقت برنامه یه پیامش من میخونم برای شما شنوندگان عزیز و دعا همین همینجا برای همه اون کسایی که مریض هستن در بیمارستان هستم این پیام ماله پیامک ماله دوست عزیزی هستش که درود بر شما استاد عزیز زم موجودی گرامی این هفته برنامه شما را در بیمارستان کنال تخت پدرم که بستری هستنز گوش میده هم فسیحی از عرد بیل آرزوی بهبود داریم برای پدر گرامی شما و برای همه کسانی که در بیمارستان هستن امیدواریم که همه بشادید به پیروزی از بیمارستان بیان و ترجمه خانواده برنامه شما ما رو گوش کنن شاد باشی دوان دو نیاکان نگه افان شما شاد و پیروز باشی شادتون بخیر باشی تایی کننده برنامه آقای محمد رزا حاج حیدری صدا وردان آقای علیه تاهری و آقای نورلا حیدری همه هنگی پخش کازمه می و آقای مهدی ابراهیمی هماهنگی برنامه و حمید فروزنده و سحراب ستایش منش عزیز و من حمید رضا هدایتی را سپاس گذارم که برنامه ما یک ایرانی ایرانیان عزیز شب بر همه شما خوش